15 ساعت گذاروندیم نه اینی که ما گذاروندیم اصول حسابداری بود, ما بود، اصول حسابداری روچه بود که ما دیدیم دیتیلاش چیزی هست که خیلی تو بحث اصول حسابداری روچه به کارون نمیاد خیلیش کردیم آقای فکرخان محمدی مادیت مالی رو به شروع کرد که بازم ادامه داریم ادامه داریم بعد از شما اوکی خب بحثی که ما داریم از 16 ساعت نیست ده بیس ساعت بحث مدیریت استراتیژیکی که برای من مرحبا میخواستم ببینم چون از ذهنم پریده که چون ما یه درس یا دو درس و بیش از شونزده ساعت در نظر گیردیم که یکیش فکر میکنم بحث مدیریت استراتیژیک باشه. چون ما نمیتونیم به صورت خلاصه و مفید بحث مدیریت استراتیژیک رو داشته باشیم حالا من نبرای برای دوستان نیستن ها؟ دوستان بقیه دی نه؟ میرسن، دیگه خود دیر میرسن خیلی خوب، کاروان چطوره؟ عالی هم خوب خوب همین گیره های کاری باستر شده مثل که هم باستر شده؟ شوید ماشید دوست ماشید کاری بازدرگانی او یک کمی نشده؟ توی کار نشده؟ خیلی های شما نشده؟ خیلی های شما یعنی ما واقعا مشکل هم ده. مشکل مشکل نقدینگیه شما در نظر میگید الان دلار چیز نفت بشکی چند دلار شده؟ عقطه هفتاد هفت بود. هفتاد نه شد. هم من دیروز خوندم. من هم من بود. هفته ده هفته ده هفته ده هفته. 50... هفته شد. تو چند روز دیگه می‌کشید بالا؟ آره بالا. ولی بالای پنج بوده، 50 بیشتر شد. دوباره برگشت سرمای گزدی رو بالا حالا ارز دلار هفته دلار بمونه یا بره بالاتر؟ چه پنجاه دلار که بود به چهل دلار چه؟ یا به دلار فاجعه است. ببینید شما آره شما پنجاه دلارم حالا در نظر بگیرید ده دلار هزینه تولید هر گشک نفته. میشه چهل دلار؟ چهل دلار از در سه هزار پون صد بکنیم دلار در یک میلیون بکنید چون روزانه حالا ما حد اکثر ما یک میلیون بشک نفت تولید میکنم یه میلیون هم میزه هفتر هزار بشک هست بعد این عدد در سی بکنید یه ماه تقسیم برای 70 میلیون جمعیت ایران بکنید عددی که شما هم بکنید 40 هزار تومن این همه هم پول یاران که میدن پول نفت. و کشور با مشکل شدید نقدینگی مواجهه اکی. کاملا ممتاز. این کرد 32 میلیارد فقط تو این چند ماه سر تواهد قیمت نفت ایران ضرر داده برزم اصطف باید، ایران شد 80 هم سلام درست سلام درسته <تصفيق> شده درستان هفته آه، روز با برای سازمان فنیه فری؟ نه نه نه بعد امتحان بدید. زمانش رو نذاشتن. امتحانو، آقای کمالی که قبلا شماها می‌گفتین که درسو تموم میشه هر ستا رو با هم تموم کنیم. ولی فرق نمی‌کنه. ولی باز می‌تونیم به... به شور بذاریم، نظر بگیریم، ببینیم یه ستا رو جدا جدا امتحان بدیم شاید بهتر بشه. این شما امتحانتون برای هر سطحی دو تا یه امتحان کتبیه، یه امتحان عملیه. نکته اصلی سر امتحان عملیه و من نظرم اینه که شما را فرماده چهار درس گذرامده دیگه چند درست دیگه نمیده همونده خب این هستش سفرانه مذاکره هستش مالی, مالی, مالی, مالی هم دیگه هست استراتژیک هم هست استراتژیک امروزی امروز استراتژیک از درست همونده ما ببینید بحثی که وجود داره بحث امتحان کتبیتون اصلا سخت نیست یعنی خیلی ساید هست هست هست سؤال هستن multiple choice و اینا خیلی سؤال هستن هیچ چیز خاصی رو ولی بحث امتحان و عملیتون خاص خودشو داره و من نظرم اینه که چون شما سه تا امتحان کتبی بدید و سه تا امتحان عملی هر درسی رو هر سطحی رو بسید هر هر... شما سه تا سرتیفیکیت از سازمان فنی هرفهی میتونید بگیرید دیگه سرتیفیکیت سطحی یک ام بی ای سطح دو و سطح سن. منطقه مراتب درس عملی تون یه مقدار اینا گیرن این میان و دقیقا مثل دانشگاه شما باید پرزنت بکنید با دفعه داشته باشید یه مقدار گیرن حالا تا جایی که من میدونم لذا من پیشنهادم اینه که شما پروژهتون از همین الان باید شروع بکنید و پروژهتون هم جامع ببینید متوجه هستید بگونه ای که مثلا ما توی پروژه های حالا چه کیس استادی، چه پروژه های ریسرچ 6 شیش چپتره میبینیم یا پنج چپتره میبین. پنج فصلی یا 6 فصلی میبینیم حالا مثلا فرض فصل شما یه تاپیکی رو مثلا مد نظرتون باشه بعد مثلا دو فصلشو برای سطح یک پرزنت کنیم، دو فصلشو برای سطح دو, دو فصلشو برای سطح فصلش سات. به این صورت باشه چون پیدا از این یه مقداری سخت میشه حالا این مدل یه مدل هم اینه که حالا تا پروژه بیارید تحلیل بدید ولی در هر صورت من نظرم اینه که پروژهتون از همین الان باید شروع بکنید چون پروژه چیزی نیستش که شما 15 روز 20 یک ماه بخواید جمعش بکنید چند صفحه بشه که تا داخل چناگار سه تا تا با هم سه از سه ساعتش. آره دیگه سه صد تو مثلا ما در نظر گرفتیم سه ده پنج حالا هر, ساعت ساعت هر باشه میگم شما دو حالت میتونید پروژه پروژه انجام بدی یا پروژه تو میتونی که ایستادی باشه که استادی حالتیه که مثلا میده تری تجهیزی میبینی بیت یا یه تر بازاریابی میبینی خب؟ بیت آو ولی یه شرکت خاصی یا مثلا الان که ما بحث مدیریت استراتژیکو داریم بحث مدیریت استراتژیک در لحیات ما شما بدونی سند استراتژیک میبینی برای سوال شما، بعد از میریزی و اجرای استراتژی رو داشته باشید. این خوش می‌تونه یه پروژه باشه. یه پروژه کامل هم هست. خب؟ یا باید ریسرچ انجام بدید. که البته باز من پیشنهادام اینه که کیس استادی بکنید. چون خود انجام ریسرچ و تحقیق داستان‌های خاص خودشو داره. و اصلا شما کلاس ریسرچ متدولوژی نداشتید و ندارید. تو برای انجام ریسرچ شما تو تا سابجکت رو خیلی خوب یاد که مثلا که واسه استاتستیکس، آماره. خواصا این تو تا سابجت تو دوره امبی تدریس نمیشه. به خاطر همه شیفت کنه سری به سمت کیس استادی که خودمونی معرفی رو شروع کردیم، حالا می‌مونیم هم برای اجتاده تا آخرش بریم حالا من نظرم اینه که شما سه تا کیس، سه تا کیس در هنگام برای سه ساعت پریزنتیشنتون آماده بکنید. یک کیس هستون میتونه طرح بازاریابی باشه که شما درس بازاریابی رو گذروندید خب، مونته حالا چه سرفستایی رو باید گذارید این بعد دارتون توضیح داده باشه یه درستتون یه کیستون میتونه طرح استراتژیک باشه خب یه درستتون هم میتونه مثلا بحث نمیدونم فاز به اجرای سیستم مثلا انگیزشی در یک سازمان که ارتباط با معنابه انسالی داشته باشه یا استراتژی‌های های مالی در یک سازمان که در هم با مدیریت مالی داشته باشه ولی این که شما اصلا یه بنویسید؟ من پیشنهادم اینه که بعد از این سابجکت ما یه جلسه سه ساعت چهار ساعت رو با هم داشته باشیم یک جلسه خب یه پنج شنبه مثلا مثلا هم مثل پنج نیستم خیلی جمعه باشه آ حالا پنج بعد از اون ممکنه بتونیم هماهنگ کنیم پنج هم بعد از دارا ممکنه بتونیم هماهنگ کنیم بیا بعد با هم رودمپ من رودمپ رو براتون بگم چیجور و شروع کنه به نوشتن. شروع کنید به نوشتن. واقعا زمان می‌بره چند ماهی مدت. بله این حداقل تا زمان که سابجکتاتون رو تمام میکنه دیگه به قول پروژه عملیتون آماده باشه. و بعد مشاوره هم بگیرید. حالا من خودم اینجا پنجشنبه بعد از زهرا هستم جمعه ها بعضی من واقع هستم. بیایید و مشاوره بگیرید که بگم بهتون مثلا درست غلط چه چیزی بعد بده. استاد راهنما می‌خویم برای بله باید داشته باشد. حالا قبل از کمالی این نظریان را ادوائز بکنه و گاید بدای کمالی الان رفته تو قسمت کتاب نویسی اما یعنی دارم کتاب می نویسه از بحث اجرا جدا شده ولی من خودم هستم حالا اگر مشاوره چیزی خواستید من نظرم که بعد از مدیریت استراتژیک شروع رو به داستان مخورید صد درسته جلسه را حتما زمان دیگه کنیم باش میخواد کن من شماو با آره آره آره حتما کلا بشید من بیام. جلسه نگران نباشی. سر فصل رو بهتون میدیم ما که نگران نیستیم. چون میدونیم شما اونجا هستید شما تشریف دارید و نیرفتید. تشریف خاصی نداره. آره. یه. بله مطمئنم که واقعا مفکومم درست و گرفته باشه. حالا و هر چیکه. چیز خاصی نیست. فعلا چارچوب درم رو را فالو بکنید. Okay. مثلاً که دفعه تا فهم ما میخواد کلاس اینکه میخوام بگیرن اینا او چه چه خوندیم که بخوام بر اساس اون از ما میدونیم چی بگیم به شما شما میگین بله الان تمام اساتیدی که اومدن به شما تدریس کردن سای خان محمدی خانم شعبانی اینا چند ساله دارم دوره بی تدریس میکنن. چند ساله دارن دوره ام بی تدریس میکنن و میدونن که چی چیزایی رو بگن که هم به درد کار خودتون بخوره، اشای عملیتون باشه، هم رو کار چیزی نیست، مالتیپل چویس ساده است. چیز خاصی نداره. خب، استارتو بزنیم بحث مدیریت استراتژیک. حالا من البته گفتم مطمئن نیستم تعداد ساعت این درس رو ولی فکر میکردم حدود 20 ساعت ما در نظر گرفتیم برای این سابجکت. کمتر از این هم نمیشه. این واقعیت هم نشینه که بحث مدیریت استراتژیک رو ما کمتر از 2 ساعت هم نمیتونیم تدریس کنیم. من خواهشی هم که دارم از نماینده کلاس حماهنگ بکونید برای جلساتی تو این کلاس نباشیم چون تخته خیلی کوچیکه. کلاس بغلی را اگه بتونی در نهایت بگیره که تخته بزرگتری داره کار ما راحت‌تر خواهد. خب من امروز با نماینده ام فایل های مدیریت استراتژیک رو میدن. در مدیریت استراتژیک یه فایل کاملی رو من اینجا گذاشتم که این فایل شامل ایبوکسه، بوکسه یعنی کتاب‌ها کتاب‌هایی که در واضع مدیریت استراتژیک فقط برای اطلاعات تون حالا در تون داشته باشید و اینا این کتاب‌ها اینجا گذاشته شده خدمت شما مقالات مرتبط یا کیس‌های مرتبط با بحث مدیریت استراتژیک، طلا برای اطلاعات اضافیتون خوبه بعد اینو داشته باشید مدیریت استراتژیک آیه سپندار باز این متریال ها من گذاشتم که در حقیقت مدیریت استراتژیک در دانشگاه تهران داره تدریس میشه استاد این سپندار اونجا درس می داد استاد میشناسیدش شما اسمش چیه آره از همکاران ما هستم آره مدیریت استراتژیک هیت و آرلند این هیت و آرلند کتاب اصلی درس مدیریت استراتژیکه خب البته در ایران کتاب فرد دیوید در دانشگاه ها یا مؤسسات مد نظر قرار داده میشه دیوید خب تو, تو بازار هم هست مدیریت استراتژیک فرد دیوید منتهای مراتب بیزنس اسکول های دنیا یا اکثر دانشگاه یا مراکز در حقیقت در کسبوکا مدیریت استراتژیک هیت و آرلند رو تدریس میکنم هیت و آرلند که من کتابش اینجا گذاشتم این کتابشه شامل پاورپونت هست که 13 چپتره متوجه هستی که من باز میکنم که کتاب فقط شما ببینید این کتابشه خب که من اینجا گذاشتم پاورپونتشه متوجه هستید به علاوه این رو که دارید می‌بینید خود کتابه با. که اینی که الان شما دارید میبینید مدیریت استراتیجیک ایت آرلند به زبان انگلیسیه ولی ما اینو ترجمه کردیم به زبان فارسیش اینجا گذاشتیم مدیریت که ترجمه شده است که اینو من خودم ترجمه کردم که پاورپوینتاش اینجاست سیزده چپتر چاپ کردید دوستان جا؟ چاپ نکردیم چاپ نکردیم چاپ کنید دیگه، یک نیست بیتر... آره؟ آره. <تصفح> <تصفح> که هم کردید آره؟ چه چاپ کردن می که نیست گذار خانه روزن نداریم اصلا که خب، ببینید این از این، پس بحث مدیرت استراتژیک هیت و آرلند سرفصل تفکر استراتژیک رو من اینجا گذاشتم. دو تا پاورپوینت و یه سری چک لیست، دو مختلف در حوزه مدیریت استراتژیک و الی تا آخر. باز یه مقاله دیگری که من خودم نوشته بودم، مقاله که نه، یعنی در به عبارت یه فرهنگ لغات نه. آره، فرهنگ لغات مدیریت استراتژیک سی و لغت کاربردی از مدیریت استراتژیک ترجمش متوجه هستید. مثلا ما در مدیریت استراتژیک یاسه در مدیریت. یک لغاتی لغاتی داریم که ممکن شما بهش بر بخورید و این ترجمش در دیکشنری نیست، نمیتونید تو دیکشنری پیدا کنید یا اگر هم ترجمش در دیکشنری باشه بیمانیه یعنی ارتباط با مباحث مدیریت نداره مثلا وقتی ما میگیم above average return یعنی بازگشت سرمایه بالاتر از حد انتظار یعنی میریم به return of investment ROI خب یا مثلا access to distribution چنده دسترسی به های تو accuracy وقتی داریم میگیم شما دارید تو دیکشنر نگاه بکن مثلا این دقت در ساعت accuracy یه تطبیق کامل با انتظارات مشتری حالا اینا برای اطلاعات اضافیتون ما اینجا گذاشتیم که بدانید و بقیه مطال ولی فولدر رو که ما روش متمرکز هستیم برای بحث مدیریت استراتژیک practical course of strategic management این فولدره هرچی فولدر اینجا هست فقط برای اطلاعات اضافی شماست که من به شما میدم ولی فولدر شماره دو دقیقه فولدریه که ما روش این تو کلاس اوکی؟ practical course of strategic management درسته؟ We need to powerpoint slide in فارسی re powerpoint slide استراتژیک management from theory to practice ها ما یه پاورپوینت اینجا داریم درسته استراتجیک منیجمنت پرزنتیشن بات شالته اکسل شیت ده این اصلا کل در واقع اصلی و کوریه که ما تو مدیریت استراتژی خدمتتون تقدیم می‌کنیم حالا داستانی که وجود داره پاورپوینت در واقع میشه همون مطالب اصلی که ما تو درس مدیریت استراتژی خدمت شما پریزنت میکنیم این پاورپوینت خیلی خیلی خیلی روش کار شده این پاورپوینت شامل کتاب فرد دیویده شامل کتاب هیت و آرلنده و به علاوه تجربه میدونید چی دارم میگم تو شما 100 بارم کتاب فرد دیویدو بخونید یا 1000 بارم کتاب هیت و آرلندو بخونید سند استراتژیک برای یه سازمان نمیتونید بنویسید و زمانی شما سرد استراتژیک برای سازمان میتونید بنویسید که بقول قول مرا تجربه مشاوره داشته باشید تجربه مدیریت سازمان داشته باشید تجربه کارگاه های مدیریت استراتژیک داشته باشید که با با سرد استراتژیک چه پله باید داشته باشه که تو این پاورپوینت و 300 تا استلایده ما تمام این موارد و گذاشتی بحث اصلی درس ما پاورpointین متوجه هستید، من در کلاس مدیریت استراتژیک یه مقداری ما این درس رو جدی باید بگیریم، البته این کلاس کلاس جدیه. ولی منم خودم به عنوان مدرس باید خیلی جدی تر بگیرم چون درس مدیریت استراتژیک تکمیل کننده بقیه دروس در ام بی ای یعنی اگر شما همه درس های، مثلا ام بی رو به شکل یک مسلس ببینید خب تمام سابجکت‌ها رو که شما می‌خونید در نهایت به مدیریت استراتژیک رو می‌خونید که به نوعی به همه این ها در ارتباطه و واقعیت امرش هم اینه MBA ای باید مدیریت استراتژیک رو خیلی خوب بلد باشه خیلی خوب بلد باشه که ما تو این دست یه بحث مدیریت استراتژیک خواهیم داشت که شامل برنامه‌ریزی استراتژیکه، مجرد بخوام تحلیل استراتژیکه، برنامه‌ریزی استراتژیک، اجرا و کنترل استراتژیک یعنی یه چط هست تحلیل برنامه‌ریزی اجرا و کنترل درسته و بحث ساختار سازمانی یعنی وقتی شما مدیریت استراتژیک رو تدوین کنید حالا چه معماری رو برای سازمان بعد برجه معماری یک سازمان حالا یه اشاره ام ما اشاره کنم یعنی یه مقدار تو این قضیه ما دیپ میشیم عمیق میشیم اوکی این میشه پاورپوینت سلاید من یه تعداد باز اکسل شیت ما اینجا گذاشتیم متوجه هستید اکسل شیتی رو که استراتیجی شیتس حالا های دیگه‌ اکسلایتی هم با این در ارتباطه استراتیجی شیتس رو باز می‌کنم ببینید حدود نمی‌دونم چند تا شیت اینا شیت‌های کاربردی و عملیاتیه یعنی چی یعنی وقتی که شما می‌خواید سوات رو برای شرکت انجام بده اس که خیلی علاقمند شما دارید شیتش اینجاست که ما تو این شیت در حقیقت چجوری میتونیم انجام بدیم که سواد اثر باشه برای این سازمان یا مثلا این شیت مربوط به تحلیل منابع و توان استفاده از منابع در سازمان حالا این کانسپت چی این مفهوم و با تو توضیح میدم ولی منظورم اینه که ما یه اکسل شیتی خواهیم داشت که به ترتیب ارجام می‌کنه رجوع می‌کنه به این اکسل شیت بعد دونه دونه رو با هم پر می‌کنیم این کورس باید پرکتیكال باشه باید عملیاتی باشه فقط تئوری نیست یعنی ما وقتی که یک یه... توضیح میدهیم تغییر منابع و توان استفاده از منابع چیه حالا چجوری چی در سازمان باید اجرا بشه اوکی؟ خیلی خوب پس ما این شیت هم باز میذارم باشه که ما تو درسمون از این شیت استفاده میکنیم پس ببین تو کل کلاس ما با دو تا فایل کار داریم یکی این و یکی اون شیت اکسله ببینید، بحث مدیریت استراتژیکو رو ما اگر بخواییم خیلی خلاصه در این وایت بورد برای شما بنوزید یعنی این 20 ساعت ما چه خواهیم گفت چه چیزهای رو خدمت شما پریزنت میکنیم سازمان شما به شکل یک هایرورکی اگر ببینید به شکل یک مسلس، ارگانایزشنال هایرورکی مسلس سازمانی ببینید پیک این مسلس، توجه کنید همانجوری که ما تو درس مدیریت تو گفتیم، بحث چشم انداز و رسالت، درسته؟ مم. و رسالته چشم انداز و رسالته ما خدمت شما تو درس مبانی مدیریت عرض کردند که سازمان ها و شرکت ها باید به اهداف اصلیشون برسن اهداف اصل شرکت ها و سازمان ها، چشم انداز و رسالته یا به عبارت نگرش هدفمند داشته باشد به اهداف برسد استراتژی یعنی راه رسیدن به هدف اصلا استراتژی یعنی رسیدن به هدف و ما تو مدیریت استراتژیک بحث میکنیم که چجوری میخوایم به هدف برسیم ما درس مدیریت استراتژیک رو به سه قسمت تقسیم میکنیم به سه قسمت تقسیم میکنیم درسته دو تا لایه اول یا دو تا لایه اول میشه بحث تحلیل و برنامه ریزی استراتیجی. و برنامه ریزی استراتژی، خب در سطح کلان و رقابتی درسته؟ در سطح کلان و رقابتی حالا درس ما در قسمت اول شامل استراتوژی های کلان شرکتیه یعنی لایه اولی رو که ما روش بحث میکنیم کوپریت کوپریت استراتوژیزه استراتوژی کلان شرکتی درسته؟ و تو این مرحله یاد میگیریم که چجوری برنامه ریزی کنیم در سطح کلان شرکتی خب؟ لایه دوم بیزنس استراتژیزه یا استراتوژی تجاری تو این لایه هم یاد میگیریم که چجوری برنامه ریزی استراتژی در سطح تجاری یا در سطح رقابتی رو داشته باشی. اوکی؟ <تصفيق> لایه سوم تحلیل و برنامه ریزی برنامه ریزی استراتژی عملیاتی. در این لایه ما یاد می‌گیریم که چجوری برنامه‌ریزی استراتژی داشته باشیم برای واحدها برای دپارتمان‌ها در سطح عملیات و اجرا خب پس لایه سوم می‌شود فانکشنال فانکشنال استراتیجز خب استراتژی‌های عملیاتی متوجه هستید استراتژی‌های عملیاتی یا استراتژی‌های فانکشنال خب حالا چه مبایز رو ما توی این درس خواهیم، یا خیاد خواهیم گرفت؟ در سطح کوپرد استراتژی یعنی استراتیجی های کلان شرکتی خب، ابزارهایی که ما خباً شما آموزش خواهیم داد این فقط من بسی ازوارانه مینویسم شما یه حسی نسبتش داشت داشته باشید بخص مضیعت رقابتی مضیعت رقابتی خب، کامپتیتیو ادواتج خب، بحث ارزش دک شده مشتریان خب، بحث تحلیل رقابت که ارزش دک شده مشتریان رو بهش میگن سی پی وی و تحلیل رقابت هم بهش میگن سی پی که من فکر می کنم بحث مزیت رقابتی و ارزش درشت مشترک شما تو درس بازاریابی خوندید یعنی اگر فکر می کنم یعنی من خودم حد اشاره بهش کردم حالا درس ها ما اینو وارد میشیم مجدد روش در بحث کوپلر استراتژی ما سوات رو یاد میگیریم مجدد ببینید دیگه این درس آخرین درسیه که شما بحث استبیلیتی رو باش سر کار دارید خب تحلیل سوات متوجه هستید ماتریس توز ماتریس کیو اس بی ام خوب آنوز یاد سپرائز هاشه پرامان مینویستم اینش سخت نیه ساده است خوب اسپیس ماتریس گراند درسته بی سی جی پی سی من فکر کنم یه اشاره بهش کردی بوستان کانسالتشن گروه مشاوره بوستان درسته؟ یه اشاره اشاره چی اشاره؟ من اشاره کردم به نما یادم نمید سگ و اولاو ها چی بود؟ گاو بشید نه با سگ و اولاو نداشت گاو داشتش بلی... من, من گفتم اینا آلا اینوی دقا خودشو خونده هم فکر کنی شما گفتی خب یه بحث دیگه که هست Analysis Matrix ماتریس تحلیلی یعنی ما در قسمت Corporate Strategies یاد می‌گیریم که مضیعت‌های رقابتی برای شرکت چیه و چشونه هم مضیگیری می‌شه الان آه‌های مهندس‌ها هم مضیعت رقابتی تون عدد چنده یعنی چند درصد شما مضیعت رقابتی دارید یا اگه بخواید از 20 به مضیعت رقابتی شرکت شما نمره بودیم چه عددی می‌دیم؟ ما اینو یاد می‌گیریم خب؟ ما می‌دیم مضیعت رقابتی مهمه. ولی شرکت ها در پله اول بعد میگن از نظر مزیت رقابتی استیتسشون چیه موقعیتشون چیه خب یا ارزش در چه توسط مشتری هست سی پی وی من اینو گفتم نه حالا یادم میاد گفتم ما ما در بحث بازاریابی به مشتری کالا و خدمات نمیفروشیم که در قبالش پول بگیریم ارزشی که داریم میفروشیم حالا ارزشی که شما دارید میفروشید یعنی کیفیت شما کیفیت شما نمرت چنده یعنی یه جور تحلیله سازمان ما داریم تحلیل میکنی در سطح کلال متوجه هستید تحلیل رقابت Competition Process Matrix سی پی ایم وضعیت سازمان شما در مقایسه با رقبا نمرت چنده ببین؟ سازمان شما در یک محیط رقابتی داره تولید و کالا و خدمات میکنه درسته؟ چه نمره سازمان شما میگیره در مقایسه با رقبا؟ رقیبت نمره چند میگ شما چه بندی میگیرید این اینو ما تو سی پی ام یاد میگیریم و این خیلی مهمه که وضعیت شرکت خودمون رو در مقایسه با رقبا بدونیم و یاد بگیریم اوکی رو که فقط ما یه اشاره بهش می کنیم استبلیوتی استبلیوتی یه تحلیله در حقیقت که وضعیت سازمان از نظر نقاط ضعف و قوت و فرصت و چه چجوریه متوجه هستید و بعد بعد از سوات یه سوال وقتی شما SWOT انجام میدهید بعدش چیکار بعد بکنید با استراتژی میشناسید اینو SWOT رو خوندید دیگه درست تحلیل سازمان از نظر نقاط قوت و ضعف فرصت و تهدید خب حالا این تحلیل ها که انجام دیدید بعدش چیکار می‌کنید سوالمون تصمیم گیری می‌کنیم برای روند سازمانی که در نظر داریم میام انتخاب استراتژی می‌کنیم استراتژی تا نمیرزی می‌کنیم یعنی بعد از SWOT شما با استراتژی بچینید تحلیل کن وضعیت سازمان چیه که بر اون اساس بیای استراتژی برای سازمان تقدیم بکنیم که ما بهش میگیم توز. خب این ماتریس توز در حقیقت برنامه ریزی استراتژی برای سازمان. اوکی؟ کیو اس پی ام؟ یه ابزاری برای اولویت بندی استراتژی هایی که شما نوشید. یعنی کدوم استراتژی از اولویت بالاتری در سازمان رو شما برجسته کدوم استراتژی اولویت پایین‌تری رو داره؟ ماتفیس اسپیس شما سوات یاد گرفتید، می‌دونید سوات چیه؟ خواهش بکنم سوات رو می‌دونید چیه؟ متوجه هستید تحلیل سازمانه اسپیس یک روش دیگریست که سازمان رو ما تحلیل می‌کنیم روش دیگریست که ما سازمان رو تحلیل می‌کنیم یعنی یه روش مثل سوات خب؟ بلاد right. دوباره یه روش دیگه یعنی تحلیل سازمان و برنامه‌ریزی استراتژیه. بی سی جی به همین صورت و انالیسیس ماتریسا هم به همین صورت. مجموعه این ابزارها که جمع بندی میشه من فکر میکنم تو دو, دو سه جلسه ما اینا رو میتونیم جمع بندی بکنیم. برنامه ریزی استراتژی، تحلیل و برنامه ریزی استراتژی در سطح کلان شرکتی مشخص میشه. یعنی در سطح کلان شرکتی، هرچند اگه ما نتونیم بگم آ این شرکتی رو محصول داشته باشه. یا یه شرکت در تو بازار داشته باشه. یعنی چی؟ بخواه میگم میگه یه شرکت بیاد مثلا تنب و پذیری رو در راستای خودش قرار بده. یه شرکت بیاد مثلا به فرض مثال ریترنچمنت یا کاهش رو در راستای کار خودش قرار بده. ما در پله اول و در لایه اول اینو یاد می‌گیریم. اینو یاد می‌گیریم. حالا من سوال دارم. سوال دارم. شما مهندس، الان سال 94 برنامت چیه؟ سال 94، شما برنامه چیه؟ از دید استراتیجی، یعنی ببین، ما میگیم مدیران یک سازمان استراتیجیست های سازمان هستن برنامه تون برای سال 94 چیه؟ شما برنامه تون چیه برای 94؟ خسته بباشیم برنامه خودم برنامه سیاسی رو تغییر <تص> بدیم؟ محل برای گرفتن اون مغازه تجاری که خب یه استراتژیه. این یه برنامه است ببین، من مازندرانی الان سال ۹۴، برنامه چیه؟ برنامه ده تا دوازده در سال نیروها رو لی بکنن تا اول اصفه تا اول ما هم بشین میری سال ۴ در تا دوزار در این یه استراتژی سال 94 برنامهم این اینه که در میزان فروش و درآمدم صبات داشته باشم استلیتی داشته باشم خب برنامه سوگامم اینه توسعه بازار برای محصولات جدین داشته باشمطور خیلی آرو آرام متوجه منظرم هستید سال 94 برنامه اینه تا حد امکان مدیتی هزینه داشته باشم سال برنامه برنامه‌م اینه تا حد امکان بحث مدیریت ارتباط با تامین کنندگانمو داشته باشم. بنظرتون ای اینا صحبته که من میگمام صحبت پیچیده نیست ولی یه مودی برنامه‌شواد برای سالاتی آتی بدونه. برنامه ما لیافه برای سال من یه بحثی دارم. یه مقاصد مدیریتی ازش پرسیده برنامه برای سال آینده چیه؟ میگه اینه که مغازهمو دلش رو ببردن. میگم یه استراتژی. یه برنامه‌ست. ما بهش میگیم شات یا لیکوئیدیشن. خب یعنی انحلال یه از یه مدی میگه آقا سال 94 چه برنامه اینه که آ برعلم شما سنمثلن لوکیشن شرکت هم رو عوض بکنم. همه این داستان ها در مرحله یک مشخص میشه. شما برنامهتون برای نه سالعاتی کللا آره دیگه برای یک سالیصد در سط کلان برای سال آینده چیه؟ متوجه منظوره من میشید. بررا لایه دوم لایه دوم میشه استراتژی های تجاری یا بیزینس استراتژیست خب؟ بیزینس استراتژیز یا استراتژی تجاری استراتژی هاییست، برنامه که شما دارید که چجوری می‌خواهی تهدید رقابتی رو خونسابه کنید شما رقیب دارید تو بازار، درسته؟ برنامه تو چی برنامه، سالاییده برای نه، غیره شما برنامه چیه برای تهدید نوترالایز کردن تهدید لقابتی؟ خب ببینید آ... <تصفيق> ما، الان ما نوید، که شروع کردیم اصلا به برنامه بودجهی سال 94 نوشتن ام. و توی این برنامه داریم، چشم انداز برنامه سال آیندهمون رو از الان حتی با رقم و عدد داریم تعییم میکنیم و توی اون برنامه ها، خب داریم استراتژی رو ما پیشمینی میکنیم که توی این بازار رقابتی بتونیم مثلا وارد مقوله و محصولات یا کار کالای بازرگانی بشیم کار بازرگانی که علاوه رقابت از سطح مالی که میخواییم اونجا سرمایه گذاری بکنیم در حدی باشه که هم کمترین رقیب رو داشته باشیم هم بیشترین سهم بازار رو داشته باشیم یعنی تمایز من استراتژی رقابتی برای سال آینده مدیریت هزینه است. یعنی کاستیدر شیپ رهبری هزینه. به شوبدن برنامه داشته باشه برای برای کردن اسکردن تهدید رقابتی. من الان برای سال آینده برنامه هم اینه که در بیزنس لیبل استراتژیز علاوه بر که حالا تمایزم دارم، باید ثمریو زمان داشته باشم، بتونم رهبری هزینه داشته باشم. هزینه ها رو کنترل کنم، قیمت محصولام بیارم پایین. بهتر سازمان بعد داشته باشه برای درسته تجاری ما در این قسمت چرخه ارزش پورتر چرخه ارزش پورتر،, پورتر و مدل رقابتی پورتر رو بحث می کنیم ما دو بیزنس استراتژی بر اساس مدل رقابتی پورتر و چرخه ارزش پورتر استراتژی رو برای شرکت می چیم. آب و فان چال استراتژیست حالا استراتژی عملیاتی چیه؟ آها شما برنامهد سال آینده برای منابع انسانی چیه ؟ برنامد برای واحد طولی چیه ؟ برنامد برای واحد بازرگانی چیه ؟ برنامد برای انبار چیه برای واحدات چیه و دپارت چیه؟ خب ما در فانکشنال استراتژیک های دپارتمانی یا برنامه‌های عملیاتی می‌نویسیم یعنی یه مدیر رو بعد برنامش برای بازاریابی چیه سالانه برنامش برای واحد چه باید تولید چیه برنامش برای واحد مالی چیه توی قسمت ابزاری رو که ما بحث می‌کنیم بیسیه بیسی سی بی اس دارید باش بالانس اسکور کارت کارت ارزیابی امتیاز متوازن بالانس اسکور کارت حالا من مینویسم بر از اسکورد کارت کارته، ازیابی امتیاز متوازن بیسی، بر از اسکورد کارد. یعنی با این ابزار ما برنامه ریزی استراتژی و اجرای استراتژی رو در سطح دپارتمانی داریم در سطح اقلیلاتی داریم متوجه منظر من استیم دقت بکنید که تمامی اینها تمامی این مواردی رو که من به شما گفتم و تو این ماتریس نوشتم باید با هم در ارتباط باشه. چشمانداز و رسالت شما با کوپر استراتژیست ها، کوپر استراتژیست ها با بیزنس استراتژیست ها، بیزنس استراتژیست ها با, با فانکشنال استراتژیست ها در ارتباط باشه. دوستان این مثلثی رو که ما ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه دقیق برای شما کشیدم کل داستان مدیریت استراتژیکه. خب و این مسلسه بهش میگن استراتیجیکال هایرارکی مسلس استراتژی البته طرح تجاری یک صفحه‌ای هم بهش میگن اصل کلا طرح تجاریه طرح تجاری یک شرکت اگر شما برای یک سازمان بخواید طرح تجاری بنویسید این سرفصلشه من تو متن طرح تجاری نمیگم من این کلان‌تر میذارم در قالب مدیریت استراتژی ولی واقعیت همش یک طرح تجاری خیلی کامل برای یک سازمان بخواید بنویسید این سرفصلشه تو روندش از بالا به پایینه نیگه آنه پایین به بالا که نیش چرا که؟ نه نه بابا بالا باشن از بالا چشمنداز و پله به پله ما میم پایین اصلا سیکویست درستمون هم به همین صورته <تصفح> <تصفح> خب به نام خدا شروع میکنی بحث اون رو سوالی هستش؟ نکته خاصی هست؟ سنگین نمیزن رو نباشید خیلید ریلسید استراتیجک سنگین و شیرینه خب اولش یک قرآن لغات قرآن سلومه ما اینجا مینویسیم ولی کاملاً راحته من منطقه مردم ای خواهشی که زنم اگه یک جلسه قیبت کنی کل درست دست تو خارج میشه چندس برد فردیل کنید آمه معلومان اوکی اما فریزی بلند ولی واقعیت نکنید قیبت نکنید جونم بله شما سمید از اسکورت کارت ایران بله کارت اسکور <سؤال> <سؤال> که میشه که کارت امتیاز ماستابه امتیاز متوازن آها اینجا میشه برگیشن که متوازن بن اسکور اسکورکارد، کارت ارزیابی امتیاز متوازه بی که ما سازمان ها کمیته کومیته بی سی داشته باشیم کمی الان ما داریم که تو بحث استراتژی های عملیاتی دپارتمانه درگیر بشن خب، به نام خدا و به نام دگرگون کننده حالها تحلیل و برنامه ویزی استراتیژیک خب مکدونات یه چندتی جمعه با هم بینیم با دار ذهنتون فریش بشه مکدونات به چهار کانسپت و چهار برنامه یا به عبارتی چهار استراتیژی های کلام اعتقاد داره به اجرام میپنه Quality, KPI خدمات, Service Cleanliness همیزی و پاکیزگی و ویو عرصه این همه شرکت به شکل و باید برنامه‌ریزی استراتژی رو در راستای کار خودشون قرار بدن والدیسنی والدیسنی میگه I do not like to repeat success I love to go to other things آقای والدیسنی اعتماد داره که تغییر و تحول در سطح سازمان منجر به موفقیت سازمانه بگه من روز به روز دوست دارم متفاوت و متغیر از دیروز باشم بله، یک جمله ای رو من براتون میخونم اگر قورباغه ای رو به همراه مقدار از آب که میکنم در آن زندگی میکنند در ظفتی بریزید و آب را به آرامی گرم کنید خواهید دید که قورباغه به گرم شدن و آب عکس عملی نشان نمیدهد تا آنکه آب جوش می آید و قورباغه میمیرد خب دلیل این رفتار این است که قورباغه یک پستان خون است درسته و دمای بدن خود را با تغییرات تدریجی دمای محیط تطبیق میدهد اگر غورباغه دیگری را بگیری و در ظرف آبی که اختلاف دمای قابل ملاحظهای با دمای بدن غورباغه دارد اما برای آن قابل تحمل است برایش قابل تحمل است بیاندازد خاهدید که به سرعت به بیرون میجهد چرا که نمیتواند این تغییر دما را تحمل کند چون غورباغه یک حیوان خونسرد است این یک حکایت بسیار معروفه که در مدیریت ما بهش میگیم رفتار قرباقه‌ای اینو یاد بگیرید و بلد باشید و اکثر ها به این حکایت ارجام می‌کنن دقت بکنید، چه مدیرانی که به محیط و تغییرات آن توجه ندارن مانند قرباقه عمل می‌کنن یا مدیران قرباقه‌ای بهشون میگن که تحلیل محیطی ندارن این مدیران روند و تعدیرات تدریجی را شناسایی نمی‌کنن بنابراین در زمان لازم استراتژی مناسب را نمی نمی‌کنن زیرا خود را برای آن شرایط تغییر آماده کرده، آماده نکرده هن. از طرف دیگر، این مدیران ظرفیت تهمان خیلی از تغییرات محیط ناگهانی را ندارند و بنابراین به آن تغییرات به درستی اکسال عمل نشان دهند. به بیان دیگر، این مدیران استراتژیک عمل نمی‌کنن خب؟ و از فرصت‌ها و تحدید‌ها تو مدیریت استراتژیک باید استراتژیکلی عمل کنیم فکر کنیم و تحلیل کنیم الان من به شما یه ضرور تقسیم کردم مخلص کردم ما می کشور مشکل نقدینگی داره دیگه درسته استراتژی من مازندرنی برای سال آینده یا دو سال آینده اینه که دو شده، شدن تو سا سازمانم ببرم به سمت یه دفتره شدن میدونی چرا وقتی دولت پول نداره فشار رو بحث مالیاتی رو زیاد میکنه. و الانم بحث بلاک لیست دارن زیاد میکنن یعنی ممیزه مالی مالیاتی که میاد مورو از شماس میکشن بیرون یعنی شما خرید فاکتور داشته باشید. باشی قشنگ لیست شرکت های بلک لیستو دارن داستان دارن ایجاد میکنن یا یعنی منتظر یه عدم انطباق تو بحثه مالی هست که شرکتو علل راس بکنن خب تو این شرایط بعد خیلی خیلی چاباک تو بحثه مالی مالیاتی برخورد کن این خودشه یک استراتژی یعنی واکنش به محیط بیرون تحلیل محیط بیرون و بر اساس اون برنامه‌ریزی استراتژیک اوکی بله، آقای نلسون ماندلا میگه هر روز صبح در گوشه ای از صحرای آفریقا از خواب بیدار میشود شود. آقای نلسون ماندلا بیدار نمی شه. از خواب بیدار می شود. قزال که در آن روز باید چالاکتر است. همه درندگان در تیزو باشند وگرنه مرد پورا خواهد برید. در گوشه دیگری از این صحرا هر روز شیری از خواب بیدار میشود که میداند باید یکی از آهوهای تیز پا را به چنگ آورد. وگرنم باید منتظر مرگ باشد شهر امکایت مهم نیست ما شیر هستین یا غذا مهم این است که بدانیم بدانیم که باید هر روز چاراکتر و چابکتر از روز قبل باشیم شرکت ها زمانی میتونن موفق باشن که دید استراتژیک داشته باشن و مهمترین دید استراتژیک شرکت ها اینه که چابکتر باشن متمایزتر باشن تمایز، تعدیل، تحول در راستای کار خودشون قرار بدن. آلبرت هر جمله خیلی قشنگی داره میگه من الهام و قضاوتهای شهودی رو باور دارم گاهی یکی پیدا میکنم که کاری درست است من نمیتوانم گلیری ارائه کنم قدرت تخیل بسیار مهمتر از دانش است مدیران ما موفق ترن که قدرت تخیل بالاتری داشته باشن تحلیل بالاتری داشته باشم. دانش اهمیتی نداره قدرت تخیلی خیلی مهمه زیرا دانش محدود است در حالی که قدرت تخیل همه جهان را در بر می گیرد. ما در دوره MBA حالا نه فقط در درس مدیریت استراتژیک سعی میکنیم که آنلییکال اسکین یا قدرت تحلیل قدرت تخیل در, در ما باید افزایش پیدا بکنه. میدونی چی دارم میگم؟ بله در قبل ما میگفتیم گفتفتیم ژنرال الان در گذشته در جنگ ها ما میگفتیم ژنرال الان میگیم می استراتژیست. کسی که مسئول موفقیت یا شکست سازمان است استراتژیسته. خب در مفهوم جنگ 90 ژنرال‌ها رو استراتژیست می‌گفتن، زیرا مسئول پیروزی یا شکست بودن. همه سازمان‌ها استراتژیست داره. یعنی باید داشته باشند که مسئول موفقیت یا شکست سازمانه. استراتژیست‌ها کسانی هستند که بیزینس رو خیلی خوب می‌شناسن. متوجه منظو من هستید؟ آن آنها خیلی خوب میشناسند، تامیکان اندیگانها خیلی خوب میشناسند، مشتریان خیلی خوب میشناسند و میتونن تحلیل کنن و برنامه داشته باشن کل این داستانی که من گفتم مسئولش کیه، وظیفه کیه فکر میکنید؟ این که ما ازش بخوایم سند استراتژیک برای سازمان بیاید وظیفه چه کسی باید باشه؟ مدیر اجرایی من. مدیر استاد آره من بحثی ندارم مدیر عامل شرکت مدیر اجرایی مسلمه ولی واقعیت همش کسی که واقعا دید نسبت به سازمان حس نسبت به سازمان داشته. حالا الان میتونه مدیر بازاریابی هم باشه ولی بله بالاترین مقام اجرایی شرکت به نوعی به شکل مسئول نوشتن سند استراتژیکه. اگر سازمان و شرکتی دنبال مشابه برای نوشتن سند استراتژیکش باشه این اشتباهه. اشتباهی بزرگه خود مدیر باید سند رو برای سازمان بنویسه. یا درگیر باشه یا نظارت داشته باشه. میتونه مشاور بگیره ولی خودش باید اشراف کامل داشته باشه. اصلا مشاوره اصلا نداره. میدونی آره ولی خودش باید اشراف کامل, کامل داشته باشه. اشراف کامل. خب استراتژیست‌ها چه مسئولیتی دارن؟ مسئولیت استراتژیست‌ها. من وقتی میگم استراتژیست با این جمله ما خیلی سر کار داریم ما. استراتژیست‌ها کساییه که مسئول موفقیت هر سازمانن. یعنی مدیر مدیر سازمان کسی که نسبت به حس داره، سنس داره خب، مسئولیت هستاره که الان میار چه یه دیگه. یه دوست دیگه. ما؟ نه یه ببین سونما رو پس بافخار بده دائم یا می من اسلاید بده سونما بخوره. باشه بابا. پس بخورین بخوری سونما. ما نمی خوریم.